مده حضرت احمد ابن موسی بن جعفر علیه السلام ای نسل ساقی کوسر سلام احمد ابن موسی جعفر سلام سید و ساداتی و شاه چراغ شیعیان را رهبر دیگر سلام خواهر تو حضرت معصوم است، عالمی را والی و رهبر، سلام ای برادر بر علی موسر رزا، ای به ایران مشهد دیگر، سلام ای وجودت برکت شیراز ما، ای زهر ابنیه ای برتر، سلام دست ما بر دامن پرخیر تو شاه ما هستی و ما نوکر سلام